بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله اشكنا فشيح جنانه واركانه اي اركان الايمان سته ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ايمان بالله شرح ذلك ايمان بملائكه همين تورثين بيمان بكتبه السماويه وكتب دي كتب جمع كتاب كتاب اسميت از مكتوب اون چیزی که نوشته شده منظور از این کتاب ها یه کتاب های خاصی هست کتاب های و خاصی که خدا من بر پیامبران خاصی وحی کرده و فرستاده برای اونها یا این که خودش اونها را نوشته یا اینکه ام کرده جبرئیل وحی میکنه بر رسول الله صلی الله علیه سلم مثلا و بعد صحابه بنویسن چون خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشه امی بود صحابه بنوشته ما در حدیث شفاعت داریم که وقتی که مؤمنین جمع میشن اونها وقتی که هستانها جمع میشن در صحنه محشر میان پیش آدم که شفاعت بکنه برای از ایک هزار سال گذشته برای شفاعت یعنی آدم خدا تو را با دست خیش آخری شفاعت کن میگوید بعد آدم میبید اولین گناه رو من مرتکب شده هر پیانبر یک مزیعت رو میگن تا اینکه میرن پیش موسی علیه السلام میگن کتب لکه توراتو بیاده تو کسی هستی که خداوند تورات رو با دست خیش براد نوشت. چطور؟ الله علم این چنین در توراتو اومده که خداوند، حالا در تورات اومده که خداوند با انگشت خیش نوشته. و ما اون چیزی که در حدیث سری حدیث صحیح هست رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند با دست خیش تورات رو نوشته برای موسی. اون علواحی که خداوند در سیناب در تور اعتکاره ملاقات فربردگار، اونجا به موسی میده در علواحی در تا خل روی هایی که نوشته شده بود تورات بعد که میاس میبینن کمش دارن گوساله رو میپرسن الق الواح که دستش شده است توراث رو پاره کرد و شکست و بعد دوباره اومد که نسخه خودش موسی هم نوشه از اون تورات و بعد ایمان داشته باشیم بحث تورات یه طرفه بحث زبور طرف دیگه هست بحث انجیل بحث قرآن مونده کتاب آسمانی هست ما باید بگیم کتاب‌ها ایمان داشته باشیم و لازمه این ایمان به کتاب یعنی کتاب های آسمانی اینه که لازمش اینه که ما اعتقاد داشته باشیم وحی خداوندیه از پیش خداونده اگر کسی بگوید قرآن دستنیی محمد مسلمان نیست این وارد اسلام نشده ایمان این کفره به کتاب ها ورده اما یک فرمیلن و لایکتی و کتبه این در ضمن کفر به کتاب ها میشه مجملن باید هر مؤمنی اعتقاد داشته باشه که سخن قرآن سخن رسول الله نیست علیه السلام سخن کیه؟ سخن رب العالم خداوند که وحی کرده از پیش خداوند و انزلنا الی تذکر نزول از کجاست؟ از پیش پروردگار حقه پروردگار اون رو وحی کرده بر رسول الله صلی اللہ علیه بعد ایمان داشته باشیم به اون اسم هایی که نسبت به چرا می‌خواد قرآن باشه، امّر کتاب قرآن کتاب یا کتاب‌های دیگر از زبور گفتیم از تورات گفتیم. و این که هر کدوم از اینها یک شریعت های خاصی را در بر گرفتند برای اون دین، صن دین موسی علیه السلام باشه، عیسی. اما مسلمانها قرآن هر کدوم یک شریعت مستقلیه. هر چند شاید یک چیزهایی مثل هم باشه اونها نماز میخوان ما هم نماز میکنیم. هر چند که شاید در آدابش با هم مختلف باشیم تفاوت داشته باشه همشون از پیش خدا بنده هر چند که شاید تفاوت داشته باشه بر حسب زمان بعضی از امور خداوند سقف بندازه مثل حرام بودن بعضی چیزها بر یهود مثل چربی و دم به بوزو و, و گاو به حلال شدنش بر ما از اون همون پی و چربی و اینا هست که بر ها حرام بود ولی بر ما شد بعد از ها عوض شد بعد از ها همونطور مود لازمه ایمانمون به کتاب های آسمانی اینی که اخبار قرآن را تصدیق بکنیم مثلا نگیم که اینها افسانه های قرانه ها. اگر بگیم افسانه است حقیقت نداره واقعیت نداره تکیه به قرانو کردیم که خداوند میگه احسن القصص ما میگیم نه افسانه است همون حرف یهود همون حرف ابو جهل تکرار بکنیم میگیم اساطیره افسانه است و لازمه ایمان به قرآن لازمه عمل بونه عقین الصراطات الذکاء باید عمل بهش بکنیم یعنی خداوند این گفته از من ما باید به شریعتش عمل بکنیم اون چنانچه در قران اومده و اون چنانچه در سنتش اومده که لازمه شه مثلا یک لکه تو بینه للناس منزل الیه یعنی انکه تنها ایمان رو باور داشته باشیم قبول داشته باشیم چیزی که خدا بهمون گفته بلکه چنانچه رسول رسولش شرح داده باید بهش عمل بکنیم تقیم الصلاه صلوات و مرایت من و, و صلوات. شلون چه خداوند از من خواسته و رسول الله بیانش داشته، باید همونطور ما بهش عمل بکنیم نه اینکه از ذهن خودمون بیاییم عبادتی برای خودمون درست بکنیم. این منافات داره با ایمان به کتاب الهی اون چیزی که مثلا جللالدین رومی مولانا در مثنوی معنوی میگه از موسی و شبان که موسی میاد نزد شبانی و شوبانی میگه که کجا تشکرات بدوزم میشه، میگه چیزی در وصف خدا میگه سرتو شونه فلان بکنم بعد موسی ناراحت میشه میگه چرا این واسه خدا میکنی بعد موسی کنار میجویه و بعد یه جایی که میره خدا انکار میکنه بعد موسا که تو چرا بندم رو از من روندی روندی بذار هرطوری که دوست داره من رو بکرهسه این قصه کفره این قصه اساطوره سندی نداره دروغ محضه از خدا فیلان براش فرستاد که چه کار بکنه که به نماز یادمون بدن نمونه که روزی یادمون بدن کسی اثر خودش میدونه نماز چطوری باید بخونه کجا قاطه بکنه کجا رکوع کجا سجدهش هست چند تا سجده باید بره کسی میتونه از ذهن خودش نمیتونه این که بنده رو رها کن هرطوری خاص برای عبادت بکنه یعنی چی یعنی الحات یعنی کفر یعنی بی‌دینی هرطوری حرکتی هر دل احساس بزار عبادت بکنه کسی مشروب می‌کنه میگه من کسی عود می‌ذاره میگه عبادت منه کسی که دولت فکن می‌ذاره میگه من این عبادت من عبادت تشریع عبادت تشریع شرع خداست که در قرآن ما را مکلب ساخته به اون آداب به اون شریعت مکلب ساخته که ما عمل بهش بکنیم و اون طوری که از خواسته انجامش بدیم یه سری چیزها از ما خواسته انجام بدیم یه سری از خواسته اعمال انجام ندیم خم میسر قماربازی و نمید اینها خدا در شهر حرام کرده در قرآن حرام کرده نبا نزدیکش بشین ولی تقرام الزنا زنا دوزي السارق وسرق فقطع عليها هم بوضع وقت كده دستش قد بكوني يقول لازم نسك دوزي يعني يعني جورمي. جورمي ان لازم نیست که بده دوزي حرام يعني چی وقتی گند دستشون واسه قتل بشه يعني فعلشون شن جريمي يك جرمي كه در مقابلش حکومتي هست اين عمله بشريعه خداست وان الحكم إلا لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في, في انفسهم حرجا مما قضيت يسلم تسليما يمون نادرن تو انك تو بشي شرع خدا حاكم بشي يعني و در نفس خودشون احساس حرج نکنن در مقابل این تکالیف خداوندی شرع خدا در قرآن و سنت احساس صد تکلیف نکنه و تسلیم و تسلیما چرا اینجوری شده چرا خداوند مثلا اینجوری تشریع کرد که مثلا من نماز بکنم صبح بشم از خوابم بزنم انسان احساس حرج نکنه چون خدا گفته چش دیگه نمیره چون چرا فلسفه شیه؟ نمیره معناش چرا خدا رو دلیل سوال نمیبره میگه چش چون خدا گفته من انجام میدم اللازمه باور کتابهای آسمانی هست ایمان به کتابهای آسمانی پس کلام خداوند از طرف خداوند بوده و حق و انزل الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدیک من الكتب و مهیمنا علیه قرآنم که آخرین کتاب هست اومده ناسخ تمامی شریعت ها و کتابهای ماقبل بوده به حق بوده و صادقه اینو باید مباشرت ایمان باور داشته باشیم ثمرات ایمان به کتابهای آسمانی اولین ثمرش اینه که خداوند ما را رها نکرده یک عنایت خاصی خدا داشته به مخلوقاتش به پندگانش رهاشون نکرده همینطور مثل حیوانات بلکه براشون پیامبرانی فرستاد براشون کتاب های فرستاد اهمیت دادن خداوند به بشریت که راه هدایت را نشینشون بده دوم اینکه خداوند در مقابل تشریعاتش ختمتی داشته مثلا بعض چیزها را بر کسان حرام حرا حرا حرا حرا و بر کسان دیگر حرام بر اساس ظروف خاصی شریعت های خاصی داشته خداوند در قرآن الکلن جعلنا منکم و منهاجا یعنی هر کدوم از شما شریعت و منهاج و روشی گذاشتیم جهاد با کفار و مشرکین برای موسی واجد نبود موسی نه با وفرع مبارزه بکنه به جنگ شمشیر برداره که بگه من جهاد میکنم بود موسی هم جهاد کرد بر علیه فرعون ادعاشو بلند کرد که من باید جهاد میکنم نه مکلفش نکرد ولی بر امت اسلام امرت و مقاتل الناس حتی یشهدو ان لا اله ایلوان هر کدوم یک شریعت خاص خودشون دارد و خداوند بر اساس ظروف مکانی زمانی یک شریعت هایی را تشریع میکنه که این دلالت بر چی داره؟ حکمت خداوند خداوند حکیم که صفاتش هم حکیم بودنه بر هر امتی اون چیزی که مناسبش هست تشریع کرده این ایمان به کتاب های آسمانی و سمراتش هرچند که بیشتراتینه فقط من ما خلاصوار اینجا فقط امچنی که شیخ ابن عطیمی رحمه الله زکمی کنه اتفاقش میکنه سبومین روک ان تؤمن بالله و ملائکتی و کتبی و رسوله ایمان و پیانبران خداوند و رسوله رسول جمع رسوله رسول مرسله مبعوطه کسی که فرستاده شده فرستاده شده تیغمبر پیامبر اون کسی که خداوند دستور به داده که وحی خدا را ابلاغ بکنه مبلغ رسول مبلغ پیام خدا را ابلاغ بکنه به ما اولین پیامبرانی که خدا از اونها یاد میکنه نوح علیه سلام بود نوح به عنوان یک پیغمبری که مکلف شد از طرف خداوند فرستاده شد چون آدم کسی نبود که براش فرستاده بشه نوح را خدا فرستاد نوح را خدا فرستاد برای ابلاغ دین رسالت خدا نامه خدا پیام خدا پیام خدا ان آوحینا ایلیک کما آوحینا ایل نوح و من بعده ما بر تو وحی کردیم کنات بر پیامبران پیشین از نوح گرفته و دیگر پیامبران وحی کردیم اولیشون نوح تا سلسله وار که قسمتی از اونها 124000 پیامبر ما داشتیم نبی و 313 تا رسول باشین که رسول خاصتر از نبی یک پیامبران خاصی با شریعت خاصی حالا اختلاف بین عالمان که چه فرقی است بین نبی و رسول که نمیخوام اینجا ما ذکر بکنیم که چه از لحاظ اصلاحی چه فرقی بین نبی و رسول هست اینجا برای بحث های مثل تحاوی و نمی در اون کتاب ها بیشتر لازمه که اون در اونجا ها گفته بشه خب پس ما باید اعتقاد داشته باشیم که خداوند پیامبرانی را برگزیده برای ابلاغ رسالت خداوند، نامه خداوند. و این پیامبران خدا از بشرند. یعنی مخلوقات آسمانی نیستن نور نیستن اون چیزی که در قرآن میخوانند علاوه بر پیامبر نور و نور، خیر پیامبر نور نیست، از نور هم نیست. انما انا بشر مثل مثلكم. بشری مثل شما، فقط فرقش در چیه؟ وحی الهی. میشه من لیکن که بشره کسی بگه رسول هم بشر نبود و کف گفته نقض آیه قرآن کرده قرآن میگه بشره تو میگی بشر نیست باید اعتقاد داشته باشیم در باره پیامبران خداوند اینکه که اونها داعی به سوی توفیق عبودیت بودن فرساله شدن به خاطر توحید نه به خاطر حکومت داری نه به خاطر که حکومتی تشکیل بدن موسا نیمد حکومتی تشکیل بده موسا اومد با مبارزه بکنه حتی رسولان سلام اومد با شرک مبارزه همش توحید مردم شرک نورزن مردم بدعت در دین نیارن مردم اهل نماز و روزه باشن همشون اصلاح عبادت مردم بود نه اصلاح حکام انسان بگه من حاکم رو اصلاح میکنم و مردم را رها بکنه موسا تلاششش کرد برای اصلاح حاکم نصیحتش کرد نصیحت نگرفت، اومد چستی به قوم و خودش. انصا، حسبه اینه که بقوم خودش بچسبه. اگر راهی داشته باشه، حاکم می‌خواد نتیحثش بکنه، اقامات حوجت درش بکنه این مسئله دیگه هست. که رسول الله صلی الله علیه و آله اراته النصيحه للسلطان فلا تبدع علانيه، فخذ بياد فلا تبدع علانيه. نصیحت ادش رئیس سلطانی، داش شو بگید یک بشه، نه علانی. حالا این ما بحث من نمیخوام بازش بکنم در بحث نصف و انواش. فقط اون چیزی که مهمه ما باید میدونیم که خداوند ما را رها نکرده و پیامبرانی همونطور کتاب کتاب‌های آسمانی فرستاد، پیامبرانی هم فرستاده از بشر برای نجات ما برای نجات ما از شرک، از گفت، از بدعت، از معطیات. هدف فرستاده شدن پیامبران این بوده و این من امتی الا خلفها نذیر هر امتی خداوند نذیری، پیغمبری، هشداردهنده‌ای در آنها فرستاد. ان انزلنا التوراة فيها و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هاذو يحكم بها النبيون قيام بران تورات نازل که پیامبران که بعد از موسی اومدن حکم کردن با توجیه و احکامی که در تورات آمده یعنی اینکه خداوند همچنان در هر امتی حتی در امتی یهود مثلا هی پیامبر خدا میفرستاد کلما بوذ تيهم نبی قتلک ما قال النبي عليه الصلاه والسلام. همباصا سنت پیامبر یعقوب خداوند هی پیامبر میفرستد می کشتن و یقتلون النبینا بغیر حق خداوند میگه جای دیگر و بغیر الحق یقتلون نبینا بغیر الحق نو حق می کشتن خب اینها نصوص درات با چی می دن تکرار پیامبر یعنی خداوند همچنان پیامبر میفرستد. حالا پس چرا بعد رسول الله پیامبر نمی خاتم النبین ايش یاد که همچنان نذیر هشدار دهنده ای باشه خدا قرآن میگه ما کنه محمد ابا احد من رجالکن ولکن رسول الله و خاتم النبیین پدر از شما نبود و خاتم النبیین است خب چرا بعد از هم نبوبت همچنان همچنان که در نزیه وجود و و دیگر امت ها بود چرا نبوت را دمیداد لا يسألو عمای فعل ما نبیتیم خدا رزید سوال بود بریم اولا دوبوم امت های پیشین خداون حجز دینشون متحد نشده بود خودشون معمول بودن که دین خودشون رو حفظو کنن. ولیکن یک سری مزیت‌ها ها به دین ما داد از جمله حفظ دین ما. اینه نحنو نزلنا ذکر و اینه له لحا فضون. ما ذکر رو نازل کردیم و حفظش هم میکنیم. ما حفظش میکنیم. یعنی شما هم حفظش نکنید. ما حفظش میکنیم. چی بایی که خود خدا, خدا عالمتر و داناتر نسبت به اون. وقتی خودش می‌خواد خداوحدی کسی نبوده در این 1400 سال بتونه حرفی از قرآن را تحریف بکنه ولی تورات انجیل همه‌شو تحریف شد این حفظ خداوندیه قرآن از طرفی حفظ شد سنت از طرفی دیگر لن يتفرقا رسول الله صلی الله علیه و آله میگه سنت قرآن لن يتفرقا تا یرضى یرضى علی الحوض تو حوض که بمنبر سنت هم جدا نمیشه یعنی قرآن و سنت با هم همونطور قرآن حفظ میشه شد دین ما چون خدا حفظش کرده دیگه نیاز به پیامبری نیست بلکه نیاز اگر باشد خداوند مجددین اینو فرسته از اهل علم اهل دین دین رو تجدید بکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرما برای هر قرنی مجددی هست که دین رو تجدید بکنه ما مجددین در طول تاریخ زیاد داشتیم ابو صدیق تو نمیدونم امام شافعی مالک ابو حنیفه و بعد بگیریم همین دیگر ائمه قر بر همچنان هم خداوند اونها را مسخر می از امسال بخاری مسلم که حدیث رسول الله از سرافی حفظ بکنن مفاهیم قرآن و سنت را از سرافی دیگر حفظ بکنن تا عصر حاضر امی بودن کتاباشون هم هست برخلاف کتاب های اهل بداد بشری من ریسی الان کتابش نیست ولی رد امام احمد بر بل من ریسی هست اگر امام احمد ردی نمی بر جهنم و یا بشری من ریسی کسی نمی دونست این بشری کیه؟ اون چیزهایی که موند خدمات اهل علمی بودن که خداوند به عنوان مجدد خدماتشون رو گذاشت به حفظ کرد برخلاف مخالفین قرآن و که جهودشون و اعمالشون بر سنا و باد رفت ما با در بحث پیامبر باید ایمانو... ایمان و لازمه ایمانمون به پیامبران خداوند اینه که ما اعتقاد داشته باشیم اونها خصایص خدایی ندارند علم مزید نمیدونند علم خاص خداوند صاحب کتاب بوده که سوییها خیلی بهش می‌ندازند. سان درباره رسول است. سان قلب میکنه میگه: ان من علمک ک علم لوشی و القلمی". از علومت علم لوش و قلم. از علم لوش و قلم. از علومت. از جمل علومت. و ان من علمک ک علم لوشی و القلمی. علم لوش و قلم یا چیه؟ خاص خداوندی. چیش کس نمیدونه جز خداوند. و عنده مفاهیم الغیبی. خداوند نزدش مفاهیم علومی هست که جز خودش کسی دیگر نمیدنان انشالله بعدن بستش خواهیم کرده بس ایمانه روز آخره اینها علوم خاص خداونده که کسی جز خداوند از کن علوم با خبر نیست بعد ما بیاییم اثبات بکنیم که نه پیامبر میدونسته میداند از سردا و پس فردا چه میشود این نقض آیات قرآنه خدا قرآن میگید به رسولات که بگو قل لأمل کل نفسی نفعن ولا ضرر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغير لاستكثرت من الخير ومما السن السوء اگر من علم غير مدلستان فيش مصيبت بهم نمي رسيد هميشه كورا كوبا جامدادا إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ما فقط بشيرم هشتار دهنده و دهنده هشتار و بشارات من وزيفهم إينه يعني إبلاغ رسالة قدران قل إني لأملك لا لكم ضرا ولا رشدا قل اینی لن يجيرني من الله احد و لن اجد من دونه ملتحدا قل لا لام من زراری و خوبی برای شما ندارن از خودم بیام الا اینکه خداون بقاهد بیام بران خداون پشتری مثل ما بیدن که میخوردن میاشامیدن میخوابیدن مي اززواج ميكردن صفات خالقیت درشون نبود قل هو الله احد الله الصمد الصمدیت صمدیت خاص خداونده که نخورد من ایشامه ولی که اون مخلوق باید بخوره و بیا شامل. خداوند بینیازه ولی مخلوق نیازمنده. چون مخلوق نیازمنده، نه پناه به نیازمند ببریم باید پناه به بی بیاز ببریم باز دست به بینیاز به اون بی‌نیاز بلند بکنیم. وقتی که خودش نیازمنده دیگه کسی نمیره نیازشو پیش اون ببره. خیلی بحث مهمه. انسان وقتی که دونه از ایمانش به پیامبران باید چطور باشه؟ خود خود زابطه من میشه. خداوند در قرآن میگه: و هو و یسید در الله تعالی علی السلام والدی هو یطعمنی و یسقینی و اذا مرضت فهو یشفی شفدا دست خداست طعام دست خداست نشانه دست خداست خدا خدا هست که طعام رو میفرسته تا من بخورم نشیدنی نمیفرسته که من بنوشم مراد را نیفرسته تا اینکه خودش منو جواب بکنه والدی یمیتنی و یحیی خالق و محیی و ممیت اینا همه خدابنده که در دست اوست اما بندگان نرسونزی در دستشونه نه علم غیر در دستشونه نه ذره در دستشونه نه نا نفس و احادیث هم زیاده که رسول الله صلی الله علیه و آله مثلا میفرما انما انا بشر و مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذکرون من بشری مثل شما هست فراموشم میکنم مثل شما که فراموش میکنید اگر فراموش کردم من تذکر بدید خود رسول الله صلی الله علیه و مثلا در نماز اشتباه نماز ظهر دو رکعت خون قد بلند شدن تذکر دادن اومدن فراموش کرده بودن که چه رکت نخوندن فرکرم در... چه رکت خوندن دو رکت خونده بشتر نخونده بودن خداوند میخواد ثابت بکنه که این پیامبران خدا بشری بیش نیسته و اگر مزیتی دارن اون مزیت، اون استفا و اون انتخاب و اون اختیار در چیه در رسالاته یعنی در پیغامی که خدا بهشون داده ودکر عبادنم ابراهیم وإسحاق ويعقوب أول الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يدخل مجاز إبراهيم وإسحاق ويعقوب وديقار في يوم برآن بعد أخرى يقول وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار بيهترينها أخيارا مصطفينا أنت خوشدا وإنهم عندنا لمن المصطفين الاخیه انتخاب شده افسانه نیستن انتخاب شدن بندگانی که انتخاب شدن یک مزیت خاصی خدا بهشون داده بندگانی خاص برای هدایت ما بندگانی خاص استفاق انتخاب خداست رد بر صوفی ها هست که میگن انسان میتونه با ریاضت با ورزش با نرمش به درجه خداوندی بلوحیت برست پیانبری اکتصابی نیست شما نمیتونید پیامبر بشید مثل غلامیرزا احمد قاضیانی که در هند بلند شد گفت که من پیامبر خدا هستم رسول الله صلی اللہ گفته لا نبیون بعدی ننبی حدیث و تحریف کرد پیامبر گفته لا نبی یعنی لا نبیون این لا پیامبری بعد از منه منم پیامبر الله هستم اسم من لا هست لا نبیون بعدی در اصل لا نبی پیانبری نیست حدیث و تحریف کرد بنافر خودش و قرآن رسول الله و خاتم و خاتم الله رسول الله خاتم و این من من رسیده خاتم منم خاتم این خاتمی نبوده به من بوده و انگوشت رفیانبران و خدا الان من انگوشت رم و تحریف قرآن و صلی الله علیه و سلم بعدش وقتی که گفت 27 تا دجال و کذاب خواهند اومد و ادعای نبوت میکنن که در این عصر ما داشتیم کسانی که ادعای نبوت کردن مثل غلامرضا احمد القادنی یا مثل بهاءالله که صاحب طریقه و مسلک و مذهب بهائیت بود بابییت بابیات اینها اومدن ادعای نبوت کردن نبوت یک چیز ابینی که ما بکنیم ما خودمو رو به درجه خدایی و پیغمبری و درجه پیغمبری برسونیم بلکه استفا استفا و انتخاب و عندنا لمن المصطفین ما اسفه و ما هستیم که انتخاب کردیم در باره عیسی میعت ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل ما قرارش دادیم پیغمبری در بین بنی اسرائیل این هو الا عبد انعمنا علی وجعلناه ما نعمت و نعمت بهش دادیم در را بزرگ کردیم و بعد پیامبری قرار دادیم پس پیامبری یک چیز اکتسابی نیست بلکه یک رسالت خاصی اشخاصی خاصی هستن که با یک رسالت خاصی خداون اونها رو تعیین میکنه برای ابلاغ دعوتش پس ما باید تمامی پیامبرانی که چه اسمشون اومده چه نیومده در قرآن اونهایی که اسمش میاد به طور مفصل با اونهایی که خدا یاد کرده ما باید اعتقاد داشته باشیم که خدا پیغمبرانی داشته و فرستاده چه اسمش بدونیم چه ندونیم نه مثل قوم نوح تکذیبشون بکنه کذبت قوم نوح المرسلین اونها پیامبران خدا رو تهدید کردن فارابی اصل رسالت رو قبول نداره میگه همچنین سروش میگن اینا قرآن هنری از رسول الله صلی الله به نگارش در آورده از اصل خبر خودش بوده این نقد رسالته میخوان نقد رسالت بکنن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی علیه و سلم پیامبری از طرف خدا بوده اصل رسالتو میخوان کار بکنن پس ما باید اعتقاد داشته باشیم وگرنه ما تکذیب کردیم مثل قوم نوح فرقی و قوم نوح نداریم. اون کسی که میگوید خداوند پیامبری نفرستاده اینها پیامبر نبودن کسی نمیتونه با خدا رابطه برقرار بکنه اونها مثل قوم نوح که پیامبران خدا را تکذیب کرده فرض ما اونها نداره کذبه قوم نوح المرسلین پیامبران خدا را اومدن انکار کردن پیامبر که فرستاده بود ما باید گفتیم از ایمانمون یک قسمتش مجملن قسمتش مفصل مجملن تمامی پیامبران رو قابل درک باشیم مفصلن تک تک اسمشون باید اصلا من النبیین نبیین مثاقهم ما منک و من و ابراهیم و موسی و عیسی اینها باید اعتقاد بهشون داشته باشیم چه اسمشون گفتم بدونید ندونید و با باور بکنیم اون قصه که در قرآن مده دونیم نجیب افسانه هست سنوپ مثل موسی فلا و لا يؤمنون حتى يحكموك في مشجر بينهم ثم لا يجدو في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلمو تسليما لازمی ایمانمون لازم من بپیامبران خداوند لازممون عمل به شریعتشونن تبخیل آیه عمل به شریعتشون يعني هر دیانتی که خدا براش دیان بری فرستاده مثلا موسا فرستاده شد ملزما برای اسرائیل به دین موسا عیسی هم به خاطر همین در حدیث داریم که عیسی علیه السلام وقتی که در روز قیامت قائم میاد پشت سر مهدی که محمد بن عبدالله هست نماز میخونه و به عنوان معمومی یک نمازگزاری پشت سر محمد بن عبدالله میاد خودش اقب قدش محمد بن عبدالله که پشت سرش نماز بکنه ایثار رساله به فردی از امت اسلام از کسی که به رسالت رسول ایمان ورده پشت سر محمد ابن عبدالله الله نام اون کسی که خداوند انتخابش کرده برای اون رهبری وقتی که نزول پیدا می‌کنه که به یک پیامبر نیست بلکه فردی از امت اسلام این صالح علیه پس ما هم ملزمیم به شریعت مصطفی صلی الله علیه وسلم حق نداریم بریم به دین یهود بچسیم یا دین عیسا بچسیم خداوند رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم انفرست و غیر از رسول الله رزمه فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجرة بينه بینهم لا ثمرات کم ایمان به انبران خدا داره اولا بحث رحمة خدا بشريات بشريات بشریعت بشریعت بحث شکر و سپاس که خداوند منته که الان هم درباره درباره پیامبران خدا و این آیاتی که در شأنشون اومده داره میخونیم. واسو گذار و گذار خدا باش. سوم محبت پیامبران خدا هست از موسی و عیسی و بغض کسانی داریم که بغض پیامبران خدا دارن از یهود که بغض عیسی را دارن، بغض رسول الله هم الله علیه و دارن، بغضشون و میجنگیم. خونمون رو فدای پیامبران خدا که اومدن، از دین خدا دفاع بکنن، ما باید خودمون رو فدا بکنیم. باید آنها را از نفس خودمون بیشتر دوست داشته باشیم. همون تو که عمر خطاب روزی میگه یا رسول, رسول الله من تو از همه کس بیشتر دوستانم جز از خودم بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمه نا ای عمر ایمانت کامل نمیشه تا اینکه مرا از خودم حتی بیشتر دوست داشته باشی حتی مرا از خودم ما باید رسول الله رب الافس عالم خصوص از خودمونم بیشتر دوست داشته باشیم خب این خلاصی بحث ایمانه به پیانبرون و خودوان که مباحثی دیگر هست در بحث ایمان به پیانبرون خداوند که ما اکتفا می کنیم به همین اقاتیم وصل الله محمد وعلى على محمد